خوان نامدار سلام وقت شما بخید در سالگرد نهم نوین الماس افتخار همکاری برای من با شما وجود داره امیدوارم که خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکن به حقتون و اهدافتون در زندگی برسین کمک های شما در واحد چسب شرکت نوین الماس به شدت قابل احترام اما مطمئن باشین جای کار بیشتری دارین توانایی های شما خیلی بیشتر از این حرف تلاش هاتون کاملا مشهوده و امیدوارم که نتیجه این تلاش خیلی زود به سمر برسه و دیده بشه انشالله که روزهای خوبی در انتظارتون باشه چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری بهترین ها سهم شما از این روزهای کار کردن در نوی نرمشه